فرود همراه با تخار دلاور تورانی بر اسب میجهند از دژ بیرون میزنند بر بلندای ستیقی روند که بر تمامی سپاه ایران دید دارد فرود به تخار میگوید هر چت به پرسم نباید نهفت كنارنگ و از هرک دارد درفش خداوند گوپال و زرین کفش چوبینی به من نام ایشان بگوی کسی را که دانی از ایران بروی سیدند بر تیغ کوه سپاهندر آمد گروها ها گروه سپردار با نیزه ور سی هزار همه رزمجوی از در کارزار سوار و پیاده به زرین کمر همه تیغ و همه نیزه ور بس ترگ زرین و زرین درفش ز کوپال زرین و زرین کفش تو گفتی به کانندرون زر نماند برآمد یکی ابر و گوهر فشاند ز بانگ طبیره میان دو کوه دل کرگسندر هوا شد ستو به دو گفت آن پیر پی کرد درفش سواران و آن تیغهای های بنفش کرا باشد اندر میان سپا چون این آلت ساز و این دستگاه چو بشنید گفتار او را تخار چون این داد پاسخ که ای شهریار پس پشت توس سه سپهبد بود که در کین پیکار او بد بود درفشی پس پشت او دیگر است چو خورشید تابان به دو پیکر است برادر پدر توست با فر و کام سپهبد فریبرز ز کابوس نام پسش ماه پیکر درفشی بزرگ دلیران بسیار و گردی سترک برا نام گستحم گجده خان که لرزان بود پیل از او زستخان پسش گرد پیکرد درفشی دراز به گردش بسی مردم رازم ساز به زیرندرش زنگه شاوران دلیری ز گردان و گنداوران درفشی پرستار پیکر ما تنش لعل و از حریر سیاه ورا بیژن گیو رانت همی که خون باسمن بر همی درفشی کجا پیکرش هست ببر بشكند بشکند زونیان هجبر ورا گرد شیدوش دارد به پای چه همی اندر آید زجا جا درفش گراز است پیکر گراز سپاهی کمندفتن و رزم ساز. درفشی کجا پیکرش گاو میش سپاه از پس و ز پیش چوناندان که آن شهر فرهاد راست که گویی مگر با سپهر است. راست. درفشی کجا پیکرش دیزه گرگ نشان سپهدار گیوه ستوگ. درفشی کجا شیر پیکر به زر که گودرز گشواد دارد به سر درفشی پلنگ است پیکر گراز پس ریو نیز است با کام و ناز درفشی کجا آهویش پیکر است که نستو توب گودرز بالشکر است درفشی کجا قرم دارد نشان ز بهرام گودرز گشبادگان همه شیر مردند و گرد و سوار یکا یک بگویم دراز است کار